رادیو مزاحم نویسنده خشایار الوند بازیگران زنده یاد خسرو شکیبایی تو جوان به استعدادی هستی. شرم نکن. تو عاشقی هستی. میترا حجار شما این آقای کرد. سلام حالت خوبه؟ امینه حیایی. یالا خوشامد به اسامیمكم. یه فشار کوچیک رو ماشه و تیتر آخر. آهنگساز فریدبرز لاچینی. تهیه کننده و کارگردان سیروس الوانی. میان میانسال با دو بنده کراوات و عینک و سبیل سفید و موهای لخت مشکی که کمی هاش سفید شده در یک خونه مجلل و شیک قدم میزنه و رو به دوربین حرف میزنه سر شعر نمیارم اصلا نمیفهمم شما چی میگید تقاضای طلاق کرده نه چی طلاق از من مرد روی کاناپه میشینه و پاکت سیگار در میاره من تا با خودش حرف نمیزنم از این خونه کام بیرون نمیذارم با خودش به من بگه باید تو چشم نگاه کنه بگی من طلاق میخوام. سیگاری رو در میاره دروغه همش دروغه این مزدرفاتی کی به شما گفته من آدمی نیستم که دست رو زنم بلند کنم من من عاشق من تسلیم من تنها بله بله حق با شماست من خب یه کمی عصبانی بودم میفهمید که خودم خب، آدم بعضی وقتی عصبانی میشه کنترل از دست میده خب این شهر تو این شلوقی دوی این دو این همه فشار عصبی خب طبیعیه که خب، منم آدمم انقدر وکیل وکیل نکنی نه من از چی میترسونیم قانون محکمه به دوربین نزدیکتر میشه. معلوم نیست با کی حرف میزنه. قانون من عشقه. عشق است. عشق. دم درصفون شما چیزی ازش نمیدونی. سیگار به دست میره و روی مبل میشینه. چون تو کتاب‌های شما نوشته نشده. سیگارو به لب میذاره. روشن میکنه. پوکی میزنه. من طلاق نمیدم. مرد مسکون بازی بود و گروه فینبارداری میکرد. این کار دیگه بابا کارش هم نمیشه کرد. حالا درم نه؟ اساسی خواهد. کارگردان که همسن نیماست پیش از این داره خاطم کنه. آره دو نظر نزدیکی یادم و رف کریباتم جزو عال دست. اصلا دلخیس نیم جای زدم ایشان فوتبال مارش آقا بریم یه جای دیگه بگیریم، انرژیشو دارم. کجا رو بگیریم؟ آقا خوب شد، می‌خوام بزنم بش نره. چی؟ رو خوب شد؟ انگار این پشت دوربین بوده. نه خوبه دیگه. شما سعی جان بپوش. سعی جان؟ دستیار یارو میاد و عصبیل سفید نیما رو آروم میکنه و با پنبه الکلی پشت لب نیما رو پاک می‌کنه. آقا بیا. خب، همگی خسته نباشید. دست یاران فیلمبردار دوربین رو باز می‌کنن تا اون رو جابجا کنن. بچه نور پروژکتور ها رو میبرن آه، آه، آه، آه. بچه های هم فرشا و چیزهای دیگر رو جمعه دو کارگردان <تصفح> دوباره پیش نیما میاد که داره چای رو هم میزنه نیما میشه نه دیگه فردشافتان خسته نمیشه امشه بگیریم چه کار مگیر تو چرا دیگه این حرف رو میزنیم نور میخواد، کار داره تمام دنیا کارکیم هشت ساعت تو <تصفح> ایرانی <تصفح> <تصفح> اینا از پنج صبح <تصفح> اینجا تا به استراحتی میکنی؟ این چهراتم خسته است خب فرشت تولد قجال بود از طرف منم بهش تبریک بود اونه باش بهت خبر میتن باش خب تو میسنی تو دیگه سنت از این افقا گذشته یه به خرجش نمیره نیما یه کارگردان رو میبوسه و میگه دستار لباس کت نیما رو بهش میگه نیما با هم قرار خدافضی می‌کنه و می صدا بردار با هدفون صدا رو چک کرده و کلی انرژی داره تو این فیلم اصلا جوان هدفون رو من هم یه زن جوانی گرفتم میشدم اسپندیار این عقیله تهیه کننده باشدتر همدیگه هرزدانو کمومی نداری تو سینما داقتونو نبینم نیما توی دفتر روزنامه یکی از دوستانش که سردوی روزن هست در راهروی روی با همراه مدیم بابا تو احسن نمیگی رفیقی داشتی خادراتی داشتی جونتها فرصت نمی کنم سر به مادرم بزنم اداه هفته جونت بابا مثلاً با اینجا روزنامه داریم یکی از همکارای مرد پیش اونو میوریم بالا میاریم می پایین من که حال مصاحبو میارکنیم من حالت میکنم سلام نیکن من شو بست پیش سردویر چشم و میخونه و بعد نه بابا بزن هدیه یه چربین ازدواش کرد یه سال که ازدواج کرده بزن طلاق کرده جدی؟ <تصفحنت> اول مطلب بنویس شنیده شد بعدش خودت آب و تابش بده و بر تو پای طلا نه بابا این کار روش نکنین آخر چرا به زندگی خصوصی هنرمندو تا فالت مکنین؟ روزنامه باید زنده باشه نیما میخنده <تصح> دست نیم رو میگیره و با خودش به اتابش میبره. جنجالی شفاق خب به چه قیمتی؟ آب رویزی؟ آب رویزی کدومه؟ تبلیغ واسه تو میکنیم باز هم تلفگاری الله وزی سلام آقای دادگر سلام آقا این ستون خانه سینما هنوز خالی ها نیمو میشینه یه مطلب بنویس در مورد بیمه هنرمندان ها این میگن می مدیره خانه سینما حق بیمه هزارو رو از جا میپره نه نمیشه آقا کیکی رو بالا کشیده جا سردبیر پسر جوان و مرخصی کال این کارا دلیل بیمه ای. آره بیمه ای کجا اجاره خب ما میخویم بگیم پول بیمه اهل سینما رو خوردن نه خوردن. ما مینویسیم که یه همچی خیالی هم به سرشون نزنه بده؟ ها اینجوری نبودی؟ ها وارده اتاق, اتاق میشن اکاسی از نیما عکس میگیر همه منتظرن کلی هم پشت خطه ببین من کاری به هنر و تعهد فرهنگی و تهاجم فرهنگی و راندخاری و این حرفا ندارم اصل خاننده هم. مردم زنی میزنن سوال میکنن عشقت جوابشون رو جوابشونو میبرسی جواب ندادی ما خودمون جا جواب میدیم خب وقت خ... کیک چاپ میشونه؟ فردا می بخواه همین فردا؟ آره چی کردی؟ عصر کامپیوتره اینجا اکسه کنی اون بر دنیا ایمیل بزنن آفیت باشه کجای کاری؟ <تصفح> اینه این اشیاتون هشت ورخ تمام رنگی ورزشو سینما عجله کنی انجام چقا بابا درست شده خوبه این تو الان خودتی خودشم حاضر دیگه فقط تلفن طولانی نشه جوابا کوتاه جنجالی شفاف بفرمایید <امتنق> بله الو آقای نیما بله بفرمایید آقا سلام سلام از بندر است بفرمایید خیلی شما رو داریم. نظر لطف سوالتون بفهمید بفرمین من و شرطی بستن خیلی مهمه چه شرطی؟ خواهیم ببینیم شما قرمزین یا آبی والو من طرفدار تیم چیمی ملی قرمز آبیش هم برام فرق نمی آقا نیما دمت گم خیلی بحالی قربون شما و شما خیلی باحالی، خیلی ممنون دیدی؟ سخت رو اکشن این چهی ای چی چه شد؟ عکس چ <تصفيق> <تصفيق> بله نفر میین آیا دادگر ؟ خوددا اصلا ببخشید الان مشغول چه کاری هستی ؟ یه کار سینمایی به اسم خاکستر عشق کار آقای صمیع ای. تو این فیلم با شما هم بازیه. خیر. دیگه بازی نمیکن؟ فکر نمی کنم به نظر خودشون داره. شاید شما ما خالفت میکنین. من مخالفتی ندارم خودشون دوست ندارم من مطمئنم که خودشون دوست دارم شما نمیذاری شما سآل دیگه ای نداری؟ چرا؟ خانمتون میدونن شما قبلا یه بار ازدواج کردین؟ بله میدونم از همه چی هم خبر دارن از رازی که تو زندگی شماست شما دارین منو وادار میکنی این تلفن رو قطع کنم مطمئن باشین دیر یا زود قضال همه چی رو میفهمه شما کیستین؟ من یه مزاهمم هم. کی؟ همسر جوان نیما که لباس شیک آبی پوشیده سینی چای بدست از پلاهی پایین میاد سینی رو روی میز میذاره و کنار نیما میشی. از گروه فیلم برداری زنگ زدم. گفتم فرد شب ساعت دوازده باید کارده نست درده کنه شب کاریه؟ شب و روزم و قاطیه اینجا مهمونیه مگه بهشون نگفتی؟ بعضا تو خیلی خونه داره و من... اصلا فکرشو نمیکرده بله؟ الو بفرمایی نیما لیوان چای رو برمیداره و میخونه چرا حرف نمیزنی؟ غزال عصبی تلفن رو قطع میکنه نیما یه جرعه چای میدوشه کی بود غزال؟ از رو هم که نمیره از سرش شب تا حالا این تلفن چارا میشه قزال بلند میشه و میره نیما بازم به فکر فرو میره مراسم تولد قزال همه نشستن قزال از شنیدن موسیقی که می نوازند لذت میبره نیما نگاهی بهش میندازه و لبخند میزنه با پاهاش ریتم میگیره قزال لبخند زنان با نگاه از نیما تشکر میکنه نیما هم خوشحاله اما ته نگاهش نگرانه غزال نگاهی به مادرش میکنه اون هم خوشحاله نیما نگاهی به پدر زنش که پیپ میکشه میندازه اون هم داره از مجلسی لذت میبره نوازنده ها دوتا پسر جوونن که گیتار میزنن و یکیشون میخونه دختر جوونی فیلم برداری میکنه برای تعیین زابه بهتر میشینه غزال نگاهش به نیماست مهمونا همه نشستن و محبه تماشای هنرنمای دو تا پسر جوونن خونه نیماد دوبلکسه و تزمینات شیکی هم داره مادر غزال کادای نیما رو بر داره مادر کاغذ کادو رو باز می‌کنه. در جبر رو باز می‌کنه. ایمالا آفریم من همین سرشت میخوام یه کالورو وا کنم که خیال همه راحت بشه <تصفح> خود غزان میبینه ما باید ببینیم اوکی بدیم پاراب کنیم تحویل بگیریم تحویل بدیم آقا ما باید ببینیم بهمیم ایگه الان ای عجیم عجی لا ترجی کی میدونه این تو چیه؟ کی میدونه این تو چیه کی میدونه مالکیه داخل جعبه به همه نشون یه گردنبند گردنمه. دستم یه ببینم. وای، خیلی قشنگه نیما. من اصلا خب قژال تولدت مبارک. مرسی. مادر گردن بند و برونی غزال میبیند زیبا تولدت مبارن غزال تولدت مبارن غزال جان یه رخ بده اینور یه رخ بده دوتا فیل بگیر عکاس جوون دوربین به دست پیش اونها اومده میما و غزال به عکاس نگاه و حالا یه اکس دست جمعی در کنار کیک عکاسی که نشسته بود بلند میشه مهمون ها یکی یکی به جای خودشون بیند بعضیا روی زمین میشین و باز به هنرنمایی دو پسر جوان گوش میدن حالا که کار می گ پدر غذا در... که تقریبا همسن نیماست پیپ به دست اونو به گوشه ای میبره. اونا در کنار نرده های پله طبقه دوم با هم صحبت میکن تو تو این جمع وصله ناجوری ما چرا؟ ها بیا نگاه بهشون بنا میخوان بگنم برخصم تو رو در مستی ما موندم نیما سریع تلفون رو برمیده بله الو گوشی اینجای خود سرزده نیما طبقه بالا میره از کنار سه قاب عکس که اکسای فیلمای قبلیشه رد میشه و قضای متوجه شده مشکوک از جاش بلند میشه مزاهی؟ همون که دیروز باهاتون صحبت کردم زنگ زدم تولد قضال و تبلیگ بکن شماره اینجا رکی گرفتیم؟ چه شلوغ پلوغ مهمونیه؟ اون نفشام هستن؟ گوش خانم من اگه اون رو بالا بیاد کار درست میدم اونم فیلن بگو کمتر سر صدا کنن یه وقت معمورا نریزن اونجا حال گیری بشه چی چی رو بریزن؟ چی میگین؟ نیما؟ شابه کجای تو؟ انگار تهرلو ها. باز تصویر به این تلفن. مامورین یه نیروی انتظامی دمی در خونه آمد. یه نفر توی ماشینه و دو نفر با پلیس غاز صحبت میکنن. نه خدا جناب سرمن تولد دی بچه هه. مهمن شیت نر یه خونه سری را انداختن رایند وقتاً جامون اندیه. شما مهمونه دارید. همسایه بغل شما ممکنه مریض داشته باشه. خدا شفا بده. چشم. من الان تعلیقش میکنم. شما خیال راحت باشه شما شامهرد کردین؟ ممنون ایشون چی؟ ایشونو خورده شما بفهمید من از صا به پدر قزار از پله‌ها ها میره جناب سروان با همکارش صحبتو همه مهمونا هم نگرانه نوازنده رو دیتارشونو جمع کردن جلسه گذشتی باهاشون خانم شما دیگه شلوغش نکن یه امشب تو دست تنمون در نهران بل نمیکنه حالو حالون باش بذار من کارامو بکنم جان رو بردونش کنین. خانم مانتوهاش رو بپوشه. خانم از پای پنجره بیه کنار. نگاه کردن نداره. این پسره ای که با من ژل فرستاده دم در. آقا بذار من خودم برام باشم نه نیما جان. ببین تو بره بالا استراحت کن. نه بفهم خونه توی بهتر گیر میدم نه نوت करतام. خوبه. آره. کم نباشه. میرم هست. می بیوخور نیسان. شو بفهم تو. مادر به همراه قزان میاد. توی این سینی مقداری غذا و کمی پول به پدر میده. پدر میره و نیما و قزاد به هم نگاه میکنن. نگران پدر سینی به دست دمه در خونه میاد معمورا رفتن وسط کوچه میاد و نگاهی میکنه، اما نیستن نیما در فکر مزاحمه و نگران روی پلیان نشسته و لب میگزه و فکر میکنه نگاهی به ساعتش میکاره. محل فیلم برداری. تانکر آبی اونجا هست چند نفر ریل ها آماده میکنن، تعدادی هنرور هم اونجا هست. تعدادی هم برای تماشا آمده تهیه کننده توفن بردوش با تلفن صحبت میکنه دستگار کارگردان تماشاچی رو به عقب میرونه نیما با ماشین مشکیش از راه میرسه میسه و پیاده میشه تهیه کننده به استقبالش میاد نیما برای هوادارانش دستکن میده کارگردان که اونارو رو میبینه میخنده مسئول لباس و دستگارش دوان دوان پیش نیما نهد بارونی سفیدی تن نیما سلام علیکم همون لباس خودکار به دست به طرف نیما میان تا امضا بگیرن اولین نفر یه دختر جوونه چند نفری هم عکس میگیرن یه پسرم با دو چرخه اونجا اومده و اذیت میکنه که دورش بکنه آقا روزه نیما به سر رسیدی که عکس خودش روی اون چسبمنده شده نگاه میکنه. چیزی می نویسه و امضا میکنه باز هم امضا. چند نفر دارن عکس میده. تهیه کننده میاد و پسر و دخرا رو پراکنده میکنه. آقا کارشناس درو میتونید به من؟ از, از سر شب تا حالا کچل کردن ما رو. خب بیخیال چه تشکیلاتی راه این همون شبیه یکی شما اومد گفت چیزانی تو بزنید دیگه. یه تپنگ شکاری برات گیر آوردم عروسک. به سر دوچرخه سوار دوباره میو و تایر کننده دنبالش میاد. سلام آقای من. سلام. ما پیشو کار که به موقعی. خوش گذشت. ای جان خلیل. فردا گیر کنیم ما هم اومده شد. با بقیه اعضا هم خوش بشی میکنه و میدون کارگردان فیلمبردار با هم صحبت کنن کننده بازم دنبال پسر با سوار سمبار حق که آره همه حق پست که کلاه زردی سرشه دم خونه اومده و پاکتی رو از کیفش در میاره و به نیما میده. ممنون. میشه یه دونه برای خودم امضا بکنید؟ من رو اسکناست نمی‌تونه بکنه. ولی دفترون دستم. دفتر رو می‌بنده. نسبو شریفی، پور نعمتی، بایش. بایش. خیلی ممنون، چون پیش از این در سریال نقش مراد بگو بازی کرده، معمر اینطور میگه. معمر رفته نیمادر می رو میبنده و کنچکاف پاکت رو باز میکنه و توی اتاق پذیرایی میره توی پاکت یه سر رسیده ورق میزنه اکسای از کارهای قبلیش توی سر رسید چسبونده شده بله سلام صبح بخیر. سلام صبح شما مثل که هر دفعه باید خودم معرفی کنم منم مزاهم حال شما خسته نشدی؟ باستت رسید؟ نیما نگاهی به سر رسید میندازه. شما کی هستی؟ چی می‌خوای؟ نترس. می‌خوام ببینمت. بهتره قبل از اینکه قزالی چیزایی رو بفهمه ما هم دیگر رو ببینیم. چی چی رو بفهمه؟ من چیزی برای پنهان کردن ندارم که بابتش به با کسی باج بدم. بفهمه؟ او انقدر مطمئن نباش. فکراتو بکن. من دوره تماس می‌گیرم. بابا از بیرون اومده سبزی و روزنامه و چیزای دیگه خریده سلام, سلام. مگه صبح از سر کار نیومدی زنگ تلفن می‌دادی چی بود مزاحم. همون دیشبیه جالبه که با من حرف نمیزنه به خاطر تو زنگ میزنه قزال که در حال رفتن توی آشپزخونه بود توی پله‌ها میشست فقط به خاطر تو درس نیما که بستر رو زیر ردوشامش قایم کرده آروم توی اتاق میاد بستر رو تخت میذاره سری رب رو در میاره آرون و یواشکی وارد همون میشه آب و باز میکنه که مثلا داره همون میکنه سراغ سر رسید میره بازش میکنه می می و میزنه عکسشو میبینه و عکسی از شب گذشته سر صحنه فیلم برداری عکاس بین هوادارانش بوده از لابلای جمعیت عکس گرفته تعجب کرده سعی میکنه لحظات دیشب رو به یاد بیاره که جمعیت به طرفش اومده تعدادی دختر و پسر جوون کدام یکیشون بود؟ یه دختر عینکی؟ نه نمیشنسه بازم فکر میکنه اولین نفر یه دختر با مانتوی خردنی نه نمیشنسه دختری با روسری سفید نه دختری با شال آبی عکس گرفته یعنی اون بوده؟ زاویه عکس نمیخونه. دختری با روسری آبی بغلشه که داره به نیما نگاه میکنه. اونه؟ نه اون نفر اوله. دختری با روسری مشکی پشت سر اونهاست که زاویهش با زاویه عکس میخونه. شاید اونه؟ دختری هم با لباس سفید و روسری سفید عکس گرفته. نگاهش نافذ بوده. شاید اون باشه. و نیما بد جوری به فکر فرو رفته. دختر دیگه‌ای هم با لباس و دستکش سفید عکس گرفته. میما زیر دوش باز هم فکر میکنه دختر دستکش سفید. ای اونه؟ و باز هم فکر می‌کنه. محل فیلمبرداری رو یادش میاد که بارونی سفید به تن، تفنگ به دست، زیر بارون مصنوعی ایستاده. تفنگو آماده کرده. کارگردان و فیلمبردار و گروه هم آماده فیلمبرداری بودن. نیما با همون سبیل مصومی و عینک با تفنگ نشونه رفته. هوادارا رو دیده که گوشه ایستادن. حالا نیما مقابل تهیه کننده پشت میز نشسته. خب. تو مخابرات قش نداری؟ خیلی انشالله موبایل دولتی میخواد؟ نه خوام شمارم عوض کنم. یعنی این خط بدم و خیلی خط دیگه بگیرم. ولی چی؟ با تلفنی دارم خط عوض کردن نمیخواد شما تشریم برین مخابرات منطقه یه شکایت مینویسی اونا تلفن تو کنترل میکنن طرفو که گیرابردن تلفنش قطع میکنن اگه تکرار بشه میکشونیمش دازگاه پدرشم در میگن نه آقا من نمیخوام شلوغ بلوغش بکنن ماجی از این چیزا همیشه هست فقط این یکی کلافه هم کرده زنه یا مرده یه دختر جوونه خدا نصیب کنه چی میخواهد میخواد منه ببینه باش قرار بذار مطمئن شدی که سر قرار میاد منم بیام وقتی خانوم تشریف بردم من میدونم چیکار کنم بسپارش دست من من دارم جدی عرف میزنم ها مگه من شوخی دارم من باید برم بونیاد نهار میمونی؟ بگم برات بیارم یارم با سینیه چای که دوتا فنجون روشه از آشپزونه بیرون میاد که نیما از راه میرسه اسلام سلام کسی اینجا؟ غریبه نیست بیا تو غزال میره و نیما هم پشت سرش پدر و مادر غزانه اسلام آقای سابری سلام, سلام آقای. علیکم برای شما چطور داشت عجب؟ والا ما که تازه اینجا بودیم این خانم دستاردار نیست دلم شعور میزد گفتم بیاییم ببینیم قایل ختم شد یا نه آره ختم به خیر شد بیا بشیم ببینم هی میگن سیماغ گرفتی شاخ قولشی کندیم تخت نردو برمیدن ببینم چی تو چندته <سدق> افشارت هم بسته قبول سما مرار بچیم از, نیما از فلها تو سر خطبتیم چایتون سرد نشه ماما نیما میسته و قضال به طرف تلفن میره نیما چند پله برمیگرده باید نگران الو. شده الو از تا حالا این دفعه صدا میشه کلافه هم کرد خب تلفن بکش بابا اه. نمیشه که ممکنه با آقای نیما کار داشته باشن از استودیو نمیدونم روزنامه ها رادیو تلویزیون. نه خانم آقا جون درست بگیر تلفن بکشه ای کسی کار داشته نمیزه به موبایل نیه کی میسن که موبایل موبایلتو نداره. آقا جون یه چیزی بخورین دیگه حتما بعد ازتون پذیرایی کنم. می‌خورین دختر. بله. قزال کنجکاو به نیما سلام آجی. حال چطوره؟ بریم آجی من تازه رسیدم میخواستم باید زنگ بزنم. نیما در حین صحبت هستی. من این داده باید تو خونه بگردم پیدا کنم. فقط از روش بخونم که خودت بفهمی نرخ قرضه. چی قزال؟ چرا انقدر تو همی؟ این تلفونا احسابم ریخته بهم خب نیمو یه آدم معمولی نیست دیگه معمولی نیست یعنی چی؟ یعنی من نباید بفهمم کی بارا تبهش میزنه؟ آره کنار کیروز که روزه فروشی من و اون نکاریم نه نگران نموش میام باشه تنام منش که میشنوستی باشه خدا حافظ. نیما پاکت سیگارشو از جیب در میاره حسابیه. سیگاری به لب میذاره و با فندک روشن میکنه پوکی میزنه و حسابی توی فکره نیما و کننده توی ماشین. تهیه کننده لباس نیروی انتظامی پوشیده و نیما اینک دودی زده الان این لباس رو تنده میکردی نمیشد داره بابا آجم لباس فیلمه ای کارگردان من در ون نقش پلیس فینال انتخاب کردم ما هم داریم تمرین میکنیم به همین سادگی ما که خلاف نمی کنیم داریم کار خیر میکنیم نمیگم بهت شک نکنه حاجی نگاهی به نیما میدازه نه ماشینی نه آجیری نه اسلاحه ماشین پلیس که هنوز نامش نایمده با... اسلاحه ولی کمرم زده به سرت لطی مامجان ماشین گوشه خیابون توقف میکنه. ببین لطیف نمیخوام سر و صدا بشه. آگیرش انداختیم نمیخوام کسی بویی ببره. نزدنم نه, نه بر بچهای گروهمون نه خبر ببرم اصلا هیچکی. بابا شما قضیه رو خیلی جدی گرفتی. جدیه لطیف. خدا تو استوجام کو. یه مشخصات بده ببینیم چه شکلیه من هنوز ندیدمش مرد حسابی از هر دختری اومد جرو من دست به شم آره دیگه وقت میانی سری. از همین آجانسیه ماشین میگیرم تا پنج دقیقه دیگه پیشتم فقط شما سعی کنیم معتلش کنی. کلاه نظامی هم سرش میذاره نگاهی توی آینه سایبون اینه ماشین, ماشین میکنه و پیاده میشه ها. لطیف درون میبند و میره نیما اینکش رو بر داره. دلهوره داره با روزامی خودش رو سرگرد میکنه دختری با مانتوی مشکی و روسری سفید قرمز به ماشین نزدیک میشه آنه اون نیست لطیف پشت سرش توی پیکان نشسته نیما عصبی روی فرمون مشت میکبه اینکش رو به چشم میذاره و پیاده میشه سیگار بلم داره روشن میکنه روزنامه رو از توی ماشین برمی‌داره. با روزنامه خودشو باد میزاد لطیف هم کم دلهوره نداره به دقت داره اونجا رو نگاه میکنه دختری با مانتو و روسری سفید به نیما نزدیک میشه لطیف از ماشین پیاده میشه و به دقت نگاه میکنه سلام حال شما سلام چی <تصفيق> نیما عصبی دختر رو رد میکنه نه این نبود اتفاقی نیما رو دیده بود ماشین پلیس از کنار پیکان رد میشه اول وطن در جنوب عمانه، سفانا جاته. متوجه به تن از قسمت بالای خونه پایین نیما از پلا پایین اومده و توی پذیرایی. قضا لبخند به لب داره خونه ای؟ اینجا پای تلویزیون. تلویزیان ساعت چنده؟ این چیه داره ببینی. تو بعد به این سال جواب بدی. فیلم بی صدای حضور و نیما در کنار خیابونه که ظاهراً کسی مخفیانه از ساختمون اونو گرفته نیما از ماشین پیاده میشه نیما تحجب کرده توی فیلم نیما از ماشین فاصله گرفته کت به دست به طرف دکه روزانه فروشی رفته با دلهوره این وران, وران نگاه کرده مردی به اون سلام کرده اونم جواب داده و از اون فاصله گرفته نیمان میشنه اون زرم به تلویزیون یکی رو پست کرده همین نیم ساعت پیش رو با پست پیش فیلم لحظه ای رو نشون میده که نیما اینک دودی برچشم خودش رو باد میزده و دختر مانتوسفید بهش نزدیک شده این سالم خودت باید جواب بدی دختر پشتش بدون بیده و فضا چهرش رو قرار داشتی اینجا؟ با این دختر قرار داشتی ها؟ تیپم زدی ها؟ قضا نیما و دختر رو در حال گفته بو میبینه چی دارین حیبه هم میگی؟ نیما به تلویزیون خیره شده قضیه این فیلم چیه راستی؟ فیلم تسته تست چی؟ عدو اصول سمیهه دیگه بعضی از سهنا رو با دوربین ویدئو تست میگیره حال هوای کار که در اومد فیلم برداری بیده قزال که باور نکرده با نگاهی به نیما جرعه چای می می‌نوشه. حالا چه تا شده خوب شده؟ نیما هم زیرچشمی نگاهی به قزال می‌کنه و باز فیلم رو لحظه ای که پلیس کنار ماشین نیما توقف پلیس اتفاقی اومد. پلیس اتفاقی اومد. دور بمخفیه دیگه کار مستند قزال در حین نوشیدن چای ابروی بالا می‌اندازه که یعنی آها تو کلوس بودی. فیلم حرکت و رفتن پلیس میشه. فیلم نیما خیره به تلویزیون و در فکر چشم مرهم می‌ذاره که باشه. چپ شده. نیما با ماشین وارد پارکینگ میشه. نگه میداره و پیاده میشه. حالا پشت در خونه رسیده. قضا نیست. و خونه تاریکه نگاهی به اطراف میکنه آخه، نیست از پلا بالا میره کاغذی رو دیده که روش نوشته من رفتم خونه مامان دوست داشتیم بیا دنبالم غذا نگاهش به زیر سیگاری روی میز میفته که فیلتر سیگاری رژ لبی شده طول اونه نیما جلوی خونه پدرزنش ماشین رو متوقف میکنه پیاده میشه قضا ناراحت و عصبی ظرف میوه به دست از آشپزخونه بیرون میاره. مادرش روی آشپزخونه است. دیر کردی. شام منتظرت بودی بی خبر بونم میشی یه اینجا من دنبال کارت میشم اینا هم می‌دزی تو زحمت منم که شام بخور نیستم. خب، کاری نمی‌سازه دی. آیسا بریچ تورا نیستا. امروز مامان اومد بود خونه ما. چه خوب. حالا رفته بودم کلاس مامان موندو و دوخته. متوجه نشدی نه؟ چرا دستش درد می‌کنه؟ کون پرده؟ متوجه چیز دیگری هم نشدی؟ چرا؟ یه ترسیگار ماتیکی؟ آخه یاد داشته تو درست بغل جاسیگاری بود انگار میخواستی تاسیگار رو بهم به نشون بدی؟ کورم بود میفهمی؟ تازه چه خبر؟ مامان سیگاری شده یا تو؟ هم. اون ترسیگار من یه زم بود کی؟ نمیدونم یکی از دوستای تو یه شادم دوستای من خب کی؟ من که نایدمش موقع که مامان خونه ما بوده اومده فضیت چی خانم شد من خودت خود کردم امروز غروب یه خانومی اومد با شما کار داشت خبرنگار بود انگار خبر تو این گرما تشنه گشنه پای اف اف خوب. دلم سوخت تارو پش کردم اومد بالا خیلی خوب خانوم ازش پذیرایی کردم نیومدی؟ رفتش همین هم. هیچی نمیخوای بگی چی باید بگم گفته با تو قرار داشته خورم شما برای چیه دختر قریبتون را, را میدیم؟ به بخشینا خب دوستتون بود دوست کدومه عزیز من شد دوست باشه شد نقشی داشته باشه والا تو خیابون پر دختره یکی که تو کیپاشون پنج بکس چاقوس باندن اینا بایی روز نمار شما نمیخونیم خاکی در زد گفت دوستشونم که آدم نباید باید در روش کنه که نگفته دوستشونم گفته دوست توه خواهرم بری چه قیافهی داشت شما که به هر حال امروز باهاش حرف زدین میگین ازش پذیرایی کردین در من توضیح بدیم ببینم چی میگفت چی میخواست با شما چرا من رو سینجیم میکنی؟ سینجیم نمیکنم خواهرم از دور مدام خونتون پرده دوختن. سبزی پاک کردم، سبزی خورد کردم، فریدتون پُر کردم، از مهمون پذیرایی کردم، بده کارم شدم، خوبه بالا چیه؟ بفرین بابا. چیه بابا چرا هواتون داغ کردین؟ بعد بوق این سوپر استار رو وعده خونه بابا. شما چته؟ هر وقت فیلم برداری داره همین دیگه، عصبی و بی‌حوصله. حالام نمیوزه. پدر پیپ به دست، پیش اومد. چطوری حالت خوبه؟ بیا درمی، بیاش پدر دست بر پشت کمر نیما میذاره و هر دو روی مبل میشینه. حالا چرا خونه قرار گذاشتی؟ جا نداشتی؟ نیما بهش برخورد. شوخی کردم بابا. پیژامه بدار. همه چی هم ردیفا؟ نه من باید نیما نگاهی به سیگار خاموش دستش میکنه و بلند میشه. همون شب نیما و قزال توی ماشین به طرف خونه رفتن. قزال به حالت قهر به نیما نگاه نمیکنه. بارون باش اون سلیفون تو که تا وقتی این فیلم تموم این تموم شه بعدی شروع میشه این اون زندگی نبود که من دنبالش باشه به خاطر تلیفونه یه دفتر دیوونه حالا که دوز چاق کش بود حالا دیوونش هم کردی یه چند رو برو سفر یلا اغل بر کن این مامان اینا بمون هم از شر این تلفنهای لعنتی خلاص میشین اما از تنهایی و فکر و خیال مییبری منم یه هفته سر وقتم با انرژی برم سر این کار ها. این فیلم تمومه بعدش هم با هم میریم هر جایی که تو بگید تا هر وقتی که تو بخوای اگه این راضیت میکنه باشه تنهات میذارم قزال به ناچار پذیرفته نیما به همون محلی اومده که ماشینش پارک بوده و ازش فیلم گرفتن اون طرفی خیابون یک ساختمون چند طبقه با نمای شیشه ای هست کیفشو از صندلی عقب بر درو درم میبنده اینک دودیشو بر میداره و به طرف ساختمون میره از ستا پله جلوی ساختمون بالا میره نگاهی به دورو بر میکنه و وارد ساختمون میشه و پیش پیرمرد سرایدار که پشت میز نشسته میره سلام پده جم. سلام های مهندس هم میخوام یکی از آپارتمان های طبقه رو ببینم. فروشیه دیگه کدوم طبقه؟ دو بومی، سه بومی اینا خالیه خالی هست ولی فروش رفته پرده های پشت پنجره رو ندیدی؟ اینی که درست مشرف دکی روزنامه فروشیه انگار طبقه سه بومی وسطی پرده نداره اون مال آقای پاینده هست و یا نه. برای دست فروش هم نداره. نیما لبخندی میزنه. کیف پولش رو از جیب توی کتش درمیاره. 5000 تومان پول جلوی پیرمرد می‌ذاره. اجاره چی؟ پیرمرت پول رو برمی‌داره و میشمونه. 145 متر نیما رو به طبقه سوم می‌بره. آفتابگیر نیست. ازش پنجره‌ها رو به پارک وا می‌شه. سبزی می‌بینی اون صفاق. نیما پنجره خونه رو باز می‌کنه، نگاهی به پایین و ماشینش میندازه. ظاهراً نمای اینجا با نمای توی فیلم میخونه. گیافه شما برام خیلی آشناست. نیما پنجره رو می‌بنده و به طرف پیرمرد. بچه‌م، بچه‌ مادر بچه این پاینده پسری، دختری؟ ای دخترش اینجا میادم بره بهتره با اون صحبت کنه. پایانه اصلا زن بچه نداره، یه برادری داشت که پیشکار دایه فرح بود. خدا بیاموزتش. یعنی هیچ که اینجا رفته آمد نمیکنه فقط من کلیپ دارم و بردزش اونم که چند وقت رفته سربازی نمیدونم اینا رو واسی چی به شما میگم دنگده یافتم خیلی آش آره یه جای دیدم سر صحنه فیلمبرداری نزدیک برج نی کاره کارگردان صحنه رو به یکی از بازیگر رو توضیح خارد. میده ببین خانم آری اتومبیلتون خراب شده قدم میزنی به ساعت نگاهکن منتظر اومدن همسرتون هست. بله متوجه شدم. به مسیر هم نگاه کن. بازیگر زنی نگاهی به اون طرف. کلافه اینا. بله خیلی کلافه. خب میگه ماشین شخصیت فیلم خراب شده و دو نفر از امداد خودرو که ماشینشون رو جلوی ماشین خراب پار کردن مشغول تعمیر هستن. کادر صدا یک صدا نه. دوربین نه. حرکت. زن با استرس جلوی ماشین خودش و امداد خود رو امداد خودرو حرکت میکنه اسم و شماره امداد رو به وضوح میشه دید زن لحظه درنگ میکنه بعد به طرف ماشین خودش میره تعمیر کار مشغوله نگاهی به مسیر میکنه و بلو. بلو. بلو. رفت باشه رفتم برگشت باشه پرگشتم داشت همشتیم اتوموبیل امداد خودرو آقا تو کارت بود دیگه؟ بله آقا هم خودش هم تابلوش هم تلفنشام دیگه ندارین نقا تون رو نبیم ب آقای دادگر بیاد اومده نیما لباس فیلم بهتن داره پیهن سر می و کرمات زی نیما جان جاکت رو بپوش الان پلان توه مم. سوار اتومبیل میشی از اون رو به رو میار یه میکنی جنش دوربین رو بیاری از زیت کل کردم شما متوجه نشدی او روی فیلم برداری جای دوربینو عوض میکنه لطیف پیش نیما. مسئول لباد دوان دوان پیش اونا میاد و میخواد کت نیمارو بهش بپوشونه این صنعت فیلمنامه نبود این شکلی نبود اسپانسر گرفتیم چی یعنی قرار یه ماهی به ما بدن هم علی اونها تبلیغی هم کار ما رو میفتیم نه بسره جون یه دقیقه نوب جونم دم پلان گرمم عرق میکنه خادت جان با خونه تماس بگیریم چطور زنگ زدم آقا مثلا اینکه خانومتون بودن باهاتون کار واجبی داشتم خانما خونه بود بله الان تماس کرد نیما موبایلش عجیبش در میاره شماره خونه رو میگیره از جمع جدا میشه الو بازن توی؟ نه عزیزم منم کجایی تو از دیشب تا حالا تو چه کار میکنی دارم اینجها رو مرتب میکنم نمیام چه سفاحت موبایلو خاموش میکنه به سرعت میدوه سوار ماشینش میشه اینک دودیشو میزنه و راه میافته نیما توی آینه ماشین نگاه میکنه سیویل مصنوعیشو میکنه با سرعت رانندگی میکنه نمیدونم یه دفعه دیوونه شد انگار سرباز گفتم موبایل سر صنه خاموش در خونه رسیده با عجله پیاده میشه و کیف به دست وارد ساختمان میشه از پله بالا میره با کلید درو باز میکنه وارد خونه میشه درو میبنده عینکش رو برمی بر و قضا رو میبینه که چمدونش وسط خونه است و خودش عصبی قدم میزنه نیما از تعجب داره شاخ در میاره تو این چه جه خونه میکنی خونمه قضا میومد نه تو من چند دقیقه پیش رسیدم کی اینجا بوده؟ نمیدونم قضاهاد به طرف میز جلو تلویزیون میره و اونو به نیما نشون میده اینا چیه؟ نیما نگاهی میکنه و به طرف میز میره دوتا فنجون تعدادی تحسیگار روژه لبی توی زیر سیگاری به یه دست گل نیما باورش نمیشه روی موب میشینه و به تحسیگارا و دست گل نگاه میکنه حرف بزن دیگه بوی عطرش هنوز میاد ببین تو دوچه اشتباه میکنی همه چی روشنه خیلی بمعرفتی نیما خیلی بابا اون فقط یه مزاهمه یه مزاحم اغده مزاحم من بودم که بعد میرفتم خونه مادرم کجا یه دقیق بشین تحمل کن بزن من همه چیز برات بگم تعمل کنم؟ چقدر؟ تا که؟ خیال میکنی من بچه هم نمیفهم می زنه با من اما تو باش حرص می میزنی بابا من حاضرم ده شاید بیارم که ادیرو اد تعال من توی خونه نبودم و تو باید باور کنی بابا فقط چی رو باور کنم که چشمم میبینه به خاطر ز با خونه بودم دروفتم همین خواستگارمو رد کردم چونم دستخره فامین همه گفتن دست برای باباش شده همه غلط کردن چورا کورش کرده گفتن سینمای یا دادن گور گوره بابا شو خاطره من چنا موی همه چین وایت من هم دوستت داشتم قید همه چیزادم با همین دوستان قطع رو بهت کردم چون فکر میکردم عرضششو داری غزال باشی داری باشی داری تو باید به حرفای من گوش بدی بعد هر جهنمی که خواستی میتونی بگی از سر رمبورو کنار دیگه نمیخوام ببینمت حرفی هم اگه داری به پدرم بگو غزال هم عشق ریزان جلوی در میره از توی آینه نگاهی به نیما میکنه نیما ن و غذاب میره نیما مستحصل و نراحت گره که رواتشو نیما عصبی تلفن بی سیمو بر میداره و روی موب می‌شینه. ببینید گیرت میارم هر جا بری پیدا میکنم وقت یه بلایی سرت میارم که یادت نره از تو برمیاد حالا خوب گوش کن میخوام به غزال بگم سری زن قبلی چه بلایی بردی ماه رو خود تو کشتی بعدشم پارتی بازی گردی و پرونده رو مال ولی من رو میکنم حالا برو از تو کشوی تلویزیون دست را یه هدیه برات گذاشتم برو پرش نیما ناباورانه تلفن روی میز میزره بلند میشه و به طرف میز تلویزیون میره کشوی اولو باز میکنه چیزی نیست کشوی دوفم عکسی از همسر مرحومش که روی زمین افتاده نیما متأثر و در فکر اکسو بر میداره و بروزی رو به یاد میاره که جوان بوده شقیقه هاش سفید نشده بوده و زنی جوان وارد خونه شده. اسب با کف خونه پهنه یه عکس از عروسی شوی میزه. سلام. باشه آدمی. راحت اینجا رو بیاد کردی. ها؟ ببین من اینجا دست به سیاسفید نزدم تو خودت بیای بچی چی اولا باید اساسیه رو ببین مبلغ ببین بسنگی نه؟ بیشی؟ لابد خیلی گرونه چیکار کردی کردین ایما؟ رازش فروشنده من شناخ یه خود بهم تخفیف داد یه خودشم چک گرفت خیلی خوب مفروبش هم میان تات آره آره آریه آره. رو میشنسن آره کلی هم تخفیف میدن حتما رو دیو شهری رو دیده حتما اما نه اونجا شناخته نمیشیم با اون گیری و با اون لباس ها و ها یادم اومد نی ایرانی رو دیده اونجا عین خودت بودی خوش قیافه مهربون دروغگو خ خب برث کردم الان چی؟ چرا؟ برای چی خودت انقدر گرفتار می خب میخوااستن یه تغییری تو زندگیمون بده؟ والا یه خود رنگ، یه خود روشنی، یه خود گل از گلدون چی شدن؟ گلدون همون نهی بردن خوش شدن، همون بهتر که نهی خب به گلتو بهتر واسه همون کادو میرن قصه چی رو میکنی چی که فراوان گلدون آشپس خونه ی اوپن رو داشته باش که نداشتی این اتاق وزرگه میشه اتاق خوابم. نورگیر کمدام داره چی میگی؟ نه، چی میگی؟ حالا اینجا یه بیه دیگه بیا این برای اتاق کار منه بلاخره من برای خودم یه اتاق کچولی میخوام دیگه برای تمرینه خوندنم، خونده هم، یاد، هم تنهاییات، خلوت کردنات آره بدون من بودنات این دیگه زیادیه که کمچه خونه احتیاج نداریم بلاخره این هم اتاقه دیگه یه وقتی دی به درد خورد تو هنوز امید داری آره؟ آره نیما، من بچه دار نمیشم مارو، هیچ چیز قطعی نیست قطعیه خودت هم اینو خوب میدونی، برون نمیاری حالا با بچه میخوام چیکار؟ فکرم میونه این همه اساس و خرتپرد دوتو طوره هم داشتن ونگو بوم میکردن بعد چه میخوام چیکار؟ دو میگی؟ تو بچه میخوای؟ تو بچه دوست داری؟ خب آره؟ ولی مهم نیست این خونه این اساسیه هیچ کنون برای مهم نیست پروشنده ها منو نشنستن به درک تو منو بشناس. من اودیب شهریار نیستم من شوهرتم رفیقتم نوکرتم تو من بشنا تو برام مهمی، فقط خودت از این پیده که داره براتو گرفته بیا بیرم بشکنشت بده. نیما عجیب پیرهن خودش پاکت سیگارش رو در میاره و یه نخجلی محروخ میگیره ماهروخ سیگار رو میگیره و میخواد با فندکی که دستش روشن کنه که نیما فندک رو ازش میگیره و خودش برای ماروخ فندک میزنه ماروخ پوکه امیغی به سیگار دادره. میزنه و دودش رو بیرون فیلم برداری نیما لباس پوشیده گیریم کرده و قرار سکاسی و مقابل زنی بازی کنه بعد از 10 سال زندگی هنوز ایشون بعد بر متاسفم دیگه نشد تو نمیشه مادرم دیگه اگه اونم نداشتم که تا الان ده کرده بودم من بنده چیکارم شما مثلا چی کم داری بشون چی کم دارم میگن خوش به حالت که شوهرت پول داره چه پولی چه کشکی ده سال شب و چشمم به در بود گفتم الان میاد نصف شب میاد دم صبح میاد اینا رو همه رو گذشتید در رو یادت دادن منه میگم که متخصص عزیز اونو درد بیارم برای خودت مستقل شی. من از وقتی که زنه شدم به استقلالمو از دست دادم. ببشیر تو نیما دیالوگش یادش میره. دستی به سرش میکشه. مستقلی. کارگردان آقای صمیمی به نیما نگاه میکنه و به وضعیت اون تاسف میخوره. نیما ناراحت روی صندلی نشسته و سیگار میکشه. صمیمی و نیما توی ماشین صمیمی. چه اتفاقی افتاد نیما؟ بگم سرویس میاد آقا ردش میکنی با چند سات تحقیق میایی گیالوگ یادت میره هم مرکز نداری با نمیشه این از تو نمیتونم قبول کنم. هر پاچیه کروشون من کچیکت فقط فقط یکی دو روز تعطیلش کنید یه جوری نمیدونم من و حالا خودم بذار مشکلی که با غذابیش نمیده باسه شده نه هنوز میدونی ما برای چی استیمام خوشمونیم؟ برای رنجی که به خاطرش میگیشی. یه رنج شیرین. بعضی وقتها از زن و بچه و همه چیز توی دنیا منتشر. استیمام دیگه یه اشته. اولش آسمان ولی افتاد مشبلها. نیما این نکته چیش؟ پشت در خونه پدر زنشی. در باز میشه. سلام خانوست بیرون. سلام امری داشتین؟ عرضی ندارم اومدم دنبال قضا فکر نکنم دیگه تو خونه برگرده اه تو که میتونم بیام آره مسئله نیست چاهی که آب نداره باید پرش کرد چاه کدوم خانم سابری این آبش هم زلال این قضا بیاد اتفاقی که نوار بیفته افتاده از دست منم کاری بر نمیاد. این جور مواقع بهتره راه حل جداییه. شما که روشن فکرین. اتفاقا این جور مواقع بنده امولم. فناتیک عقب مونده. همین منم اومدم دست زنمون بگیرم و ببرم چون خواهش میکنم خودتون قاتی نکنین. دختره دست گلمو دادم دست دیر سال نشده برش گردوندی. حالا خودمون قاتی نکنیم؟ پدرم مثل همیشه پیپ به دست اومد. حالا گیر غزال غزال اومدم دنبالت صدا تو بیار پایین اینجا استدامه فیلم برداری نیست اینجا خونه است صابخونه شم منم پس لطفا بهش بگی نگه تو فردا. صحب نیاد یا... فرد چی؟ طلاقش میدی؟ اون تغاظای طلاق کرده وکیلم گرفته تغاظای طلاق؟ بله غزار؟ از من؟ بریم بیاد خودشینه به این بگه تو چشم زل بزنه بگه من تلاخت میخوام اون حرفاشو با تو زده ما هم هیچ واهمه ای از اسم و رسم و دک و پوزتو نداریم سابری بزر حرف ما بزنم خانم وکیل براش گرفتم دوم کلوفت توپ تو گردن من از مو من از وکیل و قانون ندرس عشق میدونید چیه بری چیزی از خاصیتش شنیدی من عاشقم پشتمم گرس من قضانو طلاق نمیدم من طلاقشو میگیرم نیما دستو جیب میکنه و منتظر اومدن قزانی. پدر پیپش رو روشن میکنه. روز بخیر مادر زن عزیزم. روز شما هم بخیر. بفرمایید. وکیلتون بگیم با من تماس بگیرن. منتظرشون. نیما عینکش به چشمی میذاره و میره. و غذال که تمام گفتگوی اونها رو شنیده گریه میکنه نیما باز جلوی همون دکه پارک کرده مجله خریده و نگاهی به ساختمون رو به رو میندازه گرمشه و رو با مجله باد میزنه میاد کنار ماشینش میه کاپشش رو در میاره و توی ماشین میندازه نگاهی به همون طبقه میندازه که زنی رو پشت شیشه پنجره می بینه که سیگاری دستشه پنجره رو باز میکنه و به پایین نگاه میکنه مانتوی مشکی پوشیده و شال قرمز. پوکی به سیگارش میزنه. نیما سری میشینه توی ماشین و مجله رو دست میگیره. زن، ته سیگارش رو پرت میکنه و پنجره می رو میبنده و میره. نیما از آینه نگاه میکنه. زن از ساختمون بیرون اومده. ماشینش ماشینشو میزنه و پیش از سوار شدن، نیم نگاهی به نیما میکنه. زن سوار شده. راه میافته نیما ماشینش رو روشن میکنه و دنبالش میره زن یه پراید سفید داره نیما با دقت حواسش هست که گمش نکنه عصبی لبش رو گاز میگیره نیما میسته چون که زن هم جلوتر ایستاده زن از ماشین پیاده میشه دوزگی رو میزنه کلیدی از کیف در میاره در خونه ای رو باز میکنه و وارد خونه میشه و نیما که از کمی دورتر اونو نظاره گره نگاهی به چپ و راست میکنه و سرش روی پشتی ماشین میذاره نیما پیاده شده و در خونه اومده در بازه در کامل باز میکنه و با احتیاط وارد میشه خونه یه راهروی باریک داره به چند تا پله رسیده آروم پایین میره که ماه. بین من تو هر اتفاقی افتاده هیچ رفتی به پدر و مادرم نداره خوب شد سنگ زدی قلم کاغذ بردار این آدرس رو یاد کن چرا اینقدر آروم حرف میزنی کجای تو فرصت زیادی ندارم خودتو برسو مگه چه اتفاقی افتاده اونجا کجاست ددست... ببین قراره قبل از دادگاه هم ببینیم جاش اینجا سا به خونه ای رسیده لای در بازه درو کامل باز میکنه. خونه یه با وسایل رنگی و نقاشی های انتزاعی. نیما وارد خونه میشه. به اطراف نگاهی میکنه و ناگهان زن شور قرمز از پشت سر به نیما حمله میکنه و با لوله به سرش میکنه نیما در حال افتادن به زمین دستش به چند پستر فیلم بانو میگیره که خودش توی اون بازی کرده بوده و را کنده میشن و نیما به زمین میفته و سبدی که پر از نگاتیو روی اون میفته. نیما نگاهی به زن که لوله به دست عصبی بالای سرش من نیما بیهوش میشه. مدتی گذشته و دو قناری توی قفس میخونه نیما بهوش سر سربانت میکنه روز بخیره بایی داد کرد بینی اون اصلا زن نبوده میشه امضا به من بدین؟ میدونستم پیدا میکنی تو صافی کردم. چرا دیره؟ تو تازه‌نمات از رفتن. چی هست من نمی‌شناسمی؟ آقا نیما من خیلی دوستت دارَم. همه خونم پر از عکساته. یادت باشه ببینی. به دیوار اتاق مرد پوستهی بزرگ از فیلم‌های نیما دیدی؟ یه باشی بازی وسط می‌کنی. مرد به طرف نیمه اومده. می‌خوام هنرد پشتش بشه. به یاد میاره که یادت نمیبرم سالها پیش روزی در کنار دوست کارگردانش از بعضی ها تست بازیگری میگرفتن من نوید پاینده هستم 25 ساله از تهران عاشق سینما و بازیگری چون عاشق بازیگری هستین فکر میکنیم که باید ها بشین دیگه والا خب هر کاری بالاخره عشق میخواست همینجوری که نینه <تصفح> نخصوصا کار سینما و بازیگری هستیم شما ای خودتون عاشق نیستی؟ اسلادت، اسلادت نمیخواد؟ میخواد، صدا میخواد. اتفاقا من برای همه خدمت رسیدم آقای دادگرم لط کردم. ات من استفاده تقلید صدا دارم خودم. که، خب ببینید. مثلاً آلندلون، آلندلون. آل اجرا کنه. اجرا کنید. با اجازه. نوید از روی صندلیش بلند میشه، چرخی میزنه و عینکی به چش میزنه. غزال هم اونجاست. باتیپی دوخت درم نه وید به طرف کارگر و نیما برمیگرده گردم تو منو با چارو تانو رفتی پاریس پاریس تو مال خوشگذری خودت حالا بگذشیم میخوای با ما زنی کنیم نه به نه بگذپ برو ول پیش فرانسوی دیگه نمیخوام ببینمت برو کم نوید نه وید اینکه قصدش مش برم میداره و میشه بخصیح. نیما میخانده و کازل به اونها نگاه میکنه جان به نم بالا وای نوید دوباره بلند میشه لحظه با اونها پشت میکنه و بعد میگرده ببین جو این دلاو اونقدر ارزش نداره که من بخوام جونمو واسش بدم خودت میدونی که کلاقه واسه سر من جایزه گذاشته من باید میگادم داکسیتی شما هم زودتر جلو رو جمع کنین و بری آریزونا قبل از اینکه آپوجییتون بیارن و پوست سرتون رو قلفتی بکنن کارگردان میخنده ای نوید میشینه خب اه... حالا نوبت قزانی خب خانم سابری سابری 22 ساله دانشجو رشته بازیگری سال آخر اون وقت تجربه بازی هم داشتین شما جلو دوربین که نه ولی تا کار کردم عبتی کار دانشجویی بیشتر با هم کلاسی هم شما الان داریم یه سیدی رو تمرین میکنیم بله آنتیگون ها آنتیگون سوفوکل بله یه ماهی که دست گرفتیم نقش آنتیگونم من کار میکنم چه خوب؟ بیشتر از پردا سنگون آنتیگونه رو برمایجرا کنی حالا هر قسمتی که خودتون خاطرتون میاد بله اتفاقا متنش همرامه همه جا همرامه نوید اون نوید که حالا میفهمیم همراه قزاله پوشه آبی رو جلوی نیما میذاره نیما پوشه رو باز میکنه عینکش رو برمی داره نوید شونه نیما رو میبوسه بله تقوانیما اینم نیما, نیما به چشم میذاره این ترجمه این مسکوونه است ببخشید پس اگه اشکال نداره شما کراونو بخونی صفحه 23 اونجایی که آنتگونه روبروی کراون وای میسته به من میاد به یک کراون باشه نه نقشه کراون معمولا به بازیگر قدر میدن نه به مردای بعد که نمیارنشون تو با این چشم های فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار انکار نمیکنم من این کار را کردم اگر می توانستی صداهایی را که ترس خفه کرده است بشنوی می شنیدی که مردم مرا میخوانند، اما ستمگران از هر سعادتی برخوردارند و از آن میان از سعادت کر بودند غزال از اینکه بازیش مورد توجه نیما و کارگردان قرار گرفته خیلی خوشحاله به نوید نگاهی میکنه. حالا گریمور غزال رو برای اجرای نقش روی فیلم آماده میکنه، اونو اون رو سبزه کرده گریمور به کارش ادامه میده. حالا زمان فیلم برداری ازال چادر به سر گریم شده به محل میاد. پروژکتورها و دوربین ها هم آماده است. مردم مشتاق جمع شدن و دستیار سعی میکنه که اونها را عقبتر ببره. همون پسر جوان فیلم نویده استاد، چطوری تو؟ چرا این باشن. ای ما پشت. چرا همه اونور. کار دسیار میره و نوید کارشو شروع می‌کنه. قدم میزنه و خودشو باد میزنه. قزال پیش اون میاد و مقابلش میایسته. سلام. خوبین ممنون با اضطراب دور و بر رو نگاه می‌کنه مضطربین انگار یکم چرا نمیدونم تا جلو این همه آدم بازی نکرده بودم حس میکنم همه دارن منو نگاه میکنم البته واضحه ایشون من منو نگاه میکنم شما زیاد نگران نباشید تو <تصفيق> رو خود من نخندونی آقای داورگر تمرکزم به هم میریزه نوید بازم بین جمعیته اونها رو نگاه میکنه و برای دست تکون میده غذال هم به زور لبخندی تحویل نوید میده فیلم برداری شروع میشه منشی سحنه جلوی دوربین کلاکت میزنه و نیما و غزال بازیشون رو شروع میکنن غذال لبه یه دیوار کوتاه پارکی که پشت سرش بچه مشغول تاب بازی هستن میشینه نیما هم میاد کمی اون طرفتر میشینه حالا چه کنی؟ نمیدارم چه کنی؟ من که بعضم روشنه تو باید که تو معلوم کنیم تکلیف ما معلومه؟ جام تو تو تریفه، ردیفه؟ راه ترمینال و بلد و؟ که دابچه زبونم نمیخوا زبون مادریمه یاد اون نرفته خب بر میگرده میونه همولایتی میونه اون اخلا رو همون زمینی که ننه و با هم پیش خاکه خونه زندگی ما میسازو با بچه قط چکه بودی؟ خوب بود آقا خوب بود. خوب بود خانم خسته نباشه. خیلی ممنون. مثلاو چی خیلی خوب. درختو منتظر نویده و نوید از بین جمعیت خودشو به اون میرسونه لعنتی در اومده اینجا اومدی برای چی؟ اومدم بازی تو رو ببینم. لولش کردی. بری کردی. قندلیچو قوری. نه. مور که. پاک میشه. بعدا دو چیکار این؟ نمیدونم. کار تو کی کارت اون میکشه نمیدونم تو حالا برو من بعد باز تماس خب میگیرم نخواب و میشتم این باتری که تموم شد بعد با هم میری آخه نمیدونم چرام چه که میکشه صبری ببین همه منتظر منن بعد برم مثلا اگه اصلا دوست نداری اموزان دیگه رو ببینی اوه اون دیدین اوکی اون آقا صبری تو که قرار بود واسه مردم با بفرمایید بفرمایی بفرمایی خدافر زمان حال. سرک کشیدم ندیدم بهش اون گم شد اون تو سینمایی که تو سنبولشی گم شد قضاله منو تو شکار کرد اسم اونو به زبان در کسفت بگو پشم بداری یه وقتی خیلی دوسته داشتم نگاه همه فیلماتو دیدم یه وقتی تو بوت من بودی حالا میخوام این <متصفيق> بوتا باش بوت کدومینه چرا مزخرف میگی غزار هنر بیشه شد بخاطر اینکه لیاقتشو داشت سینما به مثل اون احتیاج داره نه انلافی مثل تو سینما به اون احتیاجی نداره اون احتیاج داری واسه همین هم غذا نیما به نوید, نوید حمله میکنه و نوید قفتی حاضر باش لنگ اینم که یه گلوله تو موقع خالی کنم دو ماه سایر و زایر دارم میام میتونه تا تو یکی از شواهی که دیر وقت میخونه با یه تیر تیر تاریکی خلاست کنم نکردی چون جهرتشو نداشتی حرف داشتن باید حرفامو که بزنم شهرتش هم میاد. یه هفته سه روز کار میکنه. عین یه فیلم بلندش جلوه. الان فیناله. الان آخره. اکشن. یالا بوشه بده. حسابینكم. یه فشار کوچیک رو ماشه و تیتراژ آخر. اکشن. تیراندازی میکنه و نیما میشینه و تیر به شیشه میخوره. تیری توی پیشونی عکس روی پوستر خالی میکنه پوستر فیلم کیمیا کارلت از دست دیدی من هیچ وقت آقل نبودم نیما به دیوار تکیه میده و نوید هنوز با هفتیر تحدیدش میکنه عشق منو تو دوزیدی از وقتی با تو هم بازی شد شرکت به جب دک انداختن. نوید به یاد میاره تو کهی نخوای دست از یک خول بازیت برداری؟ قبل از اینکه اون آبچه بشه, بشه این کارا خلبازی نبود دوست داشتی نوید، من خستم حوصله جر و بسپوتونم ندارم فردا بهم زنگ بزن سه روزه دارم بهت زنگ میزنم یا نیستی یا خسته ای یا خوابی بابا گویا دیگه نمیخوای ما رو ببینی دیگه بس کن قراره به هم زنگ بزنم من شاید فیلم برداری دارم تازه بعد تکس تمرین کنم روش کار کنم میریم سر بند کبابو میزنی تاختی تا وعده بیار همونجا خودم بااد کار می‌کنم می‌خونیم تمرین می‌کنیم بعد مگه من باید خونه باشم استند بایم استامبایا تو استنبای من آویزون کدومش بهتره گاز فردار نوید بفهم چی میگم بفهم کم کم دارم می‌فهمم نوید ناراحت مییره و قزال رفتن اونو شاهد زمان حال نیمانش از تو سیگار میکشه و نبیر مقابلش راه میره من رویزون دو سال تو زمین و هوا دست پا میزدم حالا میخوام دستمو مو بید کنم بیافتن و تو را با خودم بکیشونم پایین سبوت آزا افتقار این مرگ را به من میدین؟ گوش کن نوی اسم من اصده نکن باید درده من گوش بدی من هیچ چی نمیشنم من مردن آسونه آسون تر از این که توی اون آشه رو بکشی جلوتر نیا من نمیدونم بین تو و غزال چی بوده و چی گذشته از اولش هم نمیدونستم منو وادر با کاری نکردم گفتم باعث سرجات وقتی فهمیدم آشه روشم بهش پیشنهاده ازدواج کردم اونم قبول کرد به همیش رو داری دروب میگی مثل یه آدم در مونده داری دروب میگی میتونم حدس بزنم با اون زبون چرب و نرمه تو اون صدای دختر کاشت چه حرفایی تو گوشش خوندی اون شیفته تو بود شیفته بازیات تو بازیش دادی گول زدن یه دختر جبون نمید برای تو کار سختی باشه خوشتنی مردمی اون سالم برای من کار سختی نیست برای چیه به کسی که نگفتی می اینجا. آقا بغاجه. موبایل به نزین داره. یالا. موبایل به طرف نوید پرت میکنه. نوید جوان میده. گفتم 내려ش. صدا دانا نیما مبود به نوید نگاه میکنه. علو بله. نیما کجایی تو؟ اینجایی ای که آدرس بدی نازنگ داره نه که درست حسابی یه جوریه؟ تو الان کجایی؟ جلوی در درم بازه. و بیا تو. ناترس من اینجا ام. بیا تو ساختمون اسپللام بیا بالا. اینجا کجاست؟ خونه کیه؟ اونی اون این مزاحم. هزار که در, در آسانی در ورودی قرار داره موبایل رو قطع می‌کنه با دلهره درو می‌بنده. نوید جلوی آینه پوشش روی سرش رو بر آرایشش هم پاک میکنه اما لنز آبیش هنوز هست نیما ناامید و ناراحت در گوشه میشیه غذال با احتیاط و ترس از پله های ساختمون بالا میاد نوید پشت در اومده منتاشو هم در میاره در باز میکنه و پشت دیوار کمی میکنه نوید با گذاشتن انگوش روی بینیش از نیما میخواد که ساکت باشه قزال وارد خونه میشه که خوش اومدی قزال قزال میچرخه و نوید رو هفتیر به دست میبینه آروم میره و در نوید آروم میره و در خونه رو میبنده و قفل میکنه و کلیدش رو برمیداره دستای قزال میلرزه لرزه. ها اینجا یکم به هم ریخته است. اما جون پایان از این بکن که میخواد رو بفروشه منو فرستور اینجا اینجا مالک یک آشناهاشه مصادره شده بود پسش دادم داره من اینجا هم صاب کنم هم سرایدار جای بدی نیست دلوازه فقط بعضی وقتا سوسک داره نه ها من سوسکاره میکشم با این هفتیرشو نشون میده و نفس غزال خیلی وقت ندیدن از غزال به چشم میاد دیگه نوید چشماشو گرد میکنه و حالات مخروفی به خودش میده غزال بیشتر از نوید میترسه و به گریه میفته نیما با دیدن گریه غزال بغز میکنه بسی گریه میده من واسه خودم که به عشقم شوهرم شک کردم رفته. اگه تو میدونی عشق یعنی چی؟ اون وقته که حالید نبود را بدون یادت داده ها؟ کاشی که عمود یاد تو میداد من دوستت داشتم نفهم میدی نه بگو از اون وقتها، جای خوب خوبش همه چیش خوب بود پاک بود کاش تو میفهمیدی. اینا رو در باستو میگو، عواصت هست؟ خیلی خوب برا درد بزنه یه وقتیاش نشیمشتی یعنی که دو سال با هم بودیم، و دو ماهه ول کرد مطمئن بودم طور که دو ماهه عاشقت شده دو روزه ول میکنه کرد؟ تو لیاقت عشق منو نداشتی. بعد گفتم بیا با پدرم صحبت کن. گفتم هیچی نمیخوام. نه خونه، نه ماشین، نه عروسی، چنانی، نه مهریه، نه طلا. هیچی نمیخواستم. چون تو برام مهم بودی. ولی تو وجودشو نداشتی. هی امروز رو فردا کرد. یه روز گفتی عموم آمریکاست، قراره رو به نامم کنه. یه روز گفتی با ما پیشگاری شادته بوده قراره پول بفرستن. سربازیمو میخرم با هم میریم خارج. روزی که قرار بود به پیشنهاد نیما جواب بدم بهت زنگ زدم منتظری یه اشتاری تو بودم که به اون بگم نه میبینی خودش گفت اگه اون روز توی پاک بهش روی خوش نشون میدادم چی کار میکردی؟ اون رو ول میکردی؟ نه سباک سنگین کردی دیدی باید چرتره من لخت و فتی عشق فیلم کجا؟ نیما دادگر سپرستار کجا؟ بسته دیگه ای آروم این همه عراجیف به هم بافتی که چی رو ثابت کنیم هلورد نداره این هنوز دست منه با شوخی ندارم تو زندگی من هیچ نکته روشنی نیست نه نه ندارم نه بابا نه رفیق نه کار نه عشق عقلم که خواهد گفتی از دست داده هیچی برام نمونه جز این. نم تو سربازی کارش دادم با هم در رفته. تو همینجاش کلی حبس تو کشته. سالگرد سر من نظوریم. منو این جفتمون من پریم. من دیگه تاملیم باز ندارم. باشه سر جات. بیا با کیم گفته؟ گفتم این طرف. نوید تیری به بودن آویز شلی کرده و از کار خودش هم خیلی راضیه. از حسابی دیگه ترسیده. نگاهی به نیما می‌ندازه. با تهدید دوباره نیما روی پله با کمی فاصله از نیما میشینه. خام یه قصه تازه برات بگم. خوندش بدم پشت این چهره این چه جونه ولی مخفیه. آره. تو میدونی اون قبلا ازدواج کرده. آره میدونی چی به سرزن قبلیش اومده؟ فوت کرده. اینا ماله سال‌ها پیشه چه ربطی به الان داره سال پنج سالی که ابونیمو جایزه گرفت همون‌طور زنش می‌میره یه مرگ مشکوک یه پرونده مشکوک که کבלت نداشتن مدارک کافی و پارتی بازی تنها متهم پرونده برای همیشه مختومه در کومود وسایل رو باز می‌کنه پاکت ورمی داره عکس از روی پاکت داره فیلم دوران خدمت با نیروی انتظامی نمونه همون عکسی که برای نیما گذاشته اینم عکس یادگاری از جنازه ازال اکسو بر میداره و نگاه میکنه نوی صندلی میذاره و روش میشینه نیما بلند میشه و قدم بزنه محروخ نجمی، سی و دو ساله، علت مرگ ازش بپرس. این چی داره میگه؟ سخت نفکه بابر نکن واقعیت تو بگو بگو این دوگاه پارتی بازی بر نمیداره محرخ نجمی کی بود؟ چش بود؟ چی کم داشت که اون بله رو سرشو با محرخ تو سالن تاعت راش نشه من بازیگر بودم، اون تماشاگر بارها پشت سهنده برام گلو برده بود چند ماه بعد از ازدوازیمون متوجه شدم که... بیماره یه بیماری قریب که وقت اف سارده می وقت عصبی وقتا می شود. بچم که نداشتیم ما کاری بلد بودم کردم که تغییبی تو روحیش بدم با مردم با طرفدارم مسئله داشتم از همه بطر با همکاران به همه چیز و همه کسمش بود ورسه لعنتی کار رو خودشو کرده بود نوید هفتیر رو کنار گذاشته و با نیما به با هم بافتی کسی باغر می‌کنه؟ مهم دیگه برام مهم نیست ولی برام مهمه تو کارتینه همه جا بازی می‌کنی با همه همتون هم رو سهمید قزلم تو حواسش کردی قزال حواسش به حرفای نوید که یهو چشمش به هفتیر روی میز می‌افته نگاهی به نوید می‌کنه بلند می‌شه و هفتیر رو برمی‌داره نوید می‌خواد جلوش رو بگیره اما قزال موفق شد حالا غذا نوید رو تهدید میکنه. نوید دستاشو بالا برده و عقب عقب میره من قصهاشو باور کردم همه حالا از سر رامون برو کنار. دستام داره میلرزه. لرزه اما مطمئنم با حالی که دارم میتونم وسط پیشلیتو سوراخ کنم غذال خیره به نوید نگاه میکنه از چشد معلومه که میتونی؟ پس بزن نوید یکی دو قدم به طرف قزال میره. آخر پام درزیده. ما کاری چسی؟ نوید پیشونیشو به لوله هفت می میچسبونه. قزال خیزه علقه. یه گریه میفته. نوید بسته و حرف میزنه. بزن راحت کار. خلاص حالا زحمت بکش. آروم هفتی رو پایین میاره که یهو نوید دست غذا رو میگیره و پرت میکنه هفتیر میفته نوید شیرجه میره و برش میداره نیما خودش رو روی نوید میندازه و مانع هر میشه با هم گلاویز میشه غذال گریه کنان اونا رو نگاه میکنه درگیری نیما و نوید ادامه داره دست در دست بردن میشن کشمکش اونها رو غزال نگران گره تیری شلیک میشه که به آینه میخوره. نیما موفق میشه که هفتی رو دست بگیره و نوید روی زمین پرت میکنه حالا هفتی دست نوید روز و اون نوید رو تهدید میکنه قضا پیش نوید نوید رو زمین اقعب اقعب بگیره زبانتی نمیفهمم موسیقی بابایش نفیل تو جوان باستدادی هستی شفت نکن حقا ما عاشق نیستی هنوز دیسته سینما مال جمعونم از اونایی که عاشق وقتی اومدن ما هم بریم کنر عاشق شدی بیم نیما هفتی رو روی روزنامه که در ابتدا نوید میخوند میدازه برشت. نوید به هفتیر نگاه میکنه اما حرکتی نمیکنه. آش نوید دست به طرف هفتیر میبره اما دست پس میکشه و نگاهی به غزال میندازه. غزال هم به اون نگاه میکنه. نوید به گریه میافته سر بر صندلی نانویی میذاره و اشک میریزه. نیما آروم میاد و کنارش میشینه. دست برش نوید میذاره. نوید خودش رو توی بغل نیما میندازه غزال اشک میریزه نیما سر نوید رو در آغوش میگیره غزال آروم میره و هفتی رو بر برمیداره از دریچه روی بالکن میاد نگاهی به اطراف میکنه و هفتی رو پرت میکنه میدان عزیز فیلم مزاهم رو با هم شنیدیم فیلمی که محصول سال 1380 سینمای کشورمونه امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه و مثل همیشه من عوامل برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار همیشگی و خوب برنامه ما هستند و فرشاد آزرنی ها تهیه کننده و سردبیر این برنامه و بنده هم که خدمتگزار شما بودم نویسنده و گوینده این برنامه بهرام سربری نشد تا رادیو فیلمی دیگر خدا نگهد